فصل هشتوم. در آن روزها بار دیگر جمعیت زیادی دور ایسا جمع شد و چون غذایی نداشتند، ایسا شاگردان را خوان و به ایشان فرمود، دل من به حال این جمعیت می سوزد. سه روز است که آنها با من هستند و چیزی برای خوردن ندارند. اگر آنها را گرسنه به منزل بفرستیم، در بین راه از حال خواهند رفت. چون بعضی از آنها از راه دور آمده اند. شاگردان در جواب گفتند چگونه میتوان در این بیابان برای آنها غذا تهیه کرد؟ عیسی پرسید چند نان دارید آنها جواب دادند هفت نان پس به مردم دستور داد روی زمین بنشینند آنگاه هفت نان را گرفت و بعد از شوكرگذاری به درگاه خدا نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. شاگردان نانها را بین مردم تقسیم کردند. همچنین چند ماهی کوچک داشتند. ایسا خدا را برای آنها شکر کرد و دستور داد آنها را بین مردم تقسیم نمایند همه خوردند و سیر شدند و هفت زنبیل پر از خورده های باقی مانده جمع کردند. آنها در حدود چهار هزار نفر بودند. عیسی ایشان را مرخص فرمود. پس از آن فوراً با شاگردان خود در قایق نشست و به منطقه دلمانوته رفت. فریسیان پیش ایسا آمده و با او به بحث پرداختند. و از روی امتحان از او آیتی آسمانی خواستند. ایسا از دل آهی کشید و فرمود، چرا مردمان این زمانه به دنبال آیت هستند یقین بدانید هیچ آیتی با آنان داده نخواهد شد پس از آن عیسی آنان را ترک کرد و دوباره در قایق نشست و به طرف دیگر دریا رفت شاگردان فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند و در قایق بیش از یک نان نداشتن. عیسی به ایشان فرمود از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایهٔ هیرودیس بر باشید و احتیاط کنید. شاگردان در بین خود بحث کرده گفتند چون ما نان نیاوردهیم او این را میگوید عیسی میدانست آنها به هم چه میگویند پس به ایشان فرمود چرا درباره نداشتن نان با هم بحث میکنید مگر هنوز درک نمیکنید و نمیفهمید آیا دل و ذهن شما هنوز کور است شما که هم چشم دارید و هم گوش آیا نمی بینید و نمی آیا فراموش کرده اید که چگونه آن پنج نان را بین پنج هزار مرد تقسیم کردم؟ آن موقع چند سبد از خورده های نان جمع کردید؟ گفتند دوازده سبد. عیسی پرسید، وقتی نان را بین چهار هزار نفر تقسیم کردم، چند سبد پر از خورده های نان ها جمع کردید؟ گفتند هفت سبد پس عیسی به ایشان فرمود آیا باز هم نمیفهمید؟ فهمید عیسی و شاگردان به بیت صیدا رسیدند در آنجا کوری را پیش عیسی آوردن و از او خواهش کردند که دست خود را روی آن کور بگذارد او دست کور را گرفت و او را از دهکده بیرون برد بعد به چشمایش آب دهان مالید و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسید آیا چیزی میبینی؟ او به بالا نگاه کرد و گفت مردم را مثل درختهایی میبینم که حرکت میکنن. عیسی دوباره دستهای خود را روی چشمهای او گذاشت. آن مرد با دقت نگاه کرد و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی میدید. عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده بر نگردد. عیسی و شاگردان به دهکده‌های اطراف قیصریه فیلیپس رفتند در بین راه عیسی از شاگردان پرسید مردم مرا چه کسی می‌دانند آنها جواب دادند بعضیها می‌گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی عده‌ای می‌گویند تو الیاس و عده‌ای هم می‌گویند که یکی از پیغمبران هستی از ایشان پرسید به عقیده شما من کی هستم پتروس جواب داد تو مسیح هستی بعد عیسی با آنان دستور داد که درباره او به هیچ کس چیزی نگویند آنگاه عیسی به تعلیم ایشان پرداخت و گفت لازم است پسر انسان متحمل رنجهای زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود ترد و کشته شود و پس از سه روز زنده گردد عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت به طوری که پتروس او را به گوشهی برده ملامت کرد اما عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با پرخاش به پتروس گفت از من دور شو ای شیطان افکار تو افکار است نه خدایی پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناهالود و فاسد آر داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید، از او آر خواهد داشته.